اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آله الطاهرین خدمت عزیزان خودم ارزی سلام دارم و صبح خیر میگم و انشالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید اما بحث ما در مقدمهی که در علم عروض داشتیم بیان میکردیم به اینجا رسید که ما وزنهای اصلی رو گفتیم که به شکل املای عادی فعول فائل مستفعل فائلاتن نوشتیم تو اون جدول بعد به شکل کتابت عروضی نوشتیم که بعد او لون به شکل جدا تو اون جدول بعد رمزهای اینها رو هم مشخص کردیم گفتیم هر کدام حرفی که متحرک است به شکل یو و هر متحرک و ساکنی به شکل خط تیره نوشته میشیم و اگر حرفی هم ساکن باشه اون رو به شکل صفر و نقطه نشون میگه که این رو در بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصَلِّ للربک وانحر ان که هو هم هم به شکل املاع اعتیادی یعنی همون عادی قرآن نوشتیم هم به شکل املاع عروزی در زیرش تقطی کردیم و هم علامات رو به شما نشون دادیم تو صفحه کتاب هست و دیدی حالا از این تیکه که میخوام بخونم شما یه دوست تا محور جدید و اصطلاحاتی رو یاد میگیرید و این اصطلاحات رو حالا اصطلاح دیگه به ذهن میسپارید که ما توی متنی که بعدها به عنوان ننجلسه بعد انشاءالله به عنوان بحرها میخونیم دیگه تا آخر تر شما این اصطلاحات رو که بگیم بدانید که چیست میفرماید که و ما یجب ملاحظته و از چیزهایی که لازمه که ما در نظر بگیریم اینه از مواردی که لازمه در نظر بگیریم ان معرفت البهره و نوع وزنهی لايت ما الا بالقدرت علا فصل التفعيلات بعضها عن بعضه اینکه شما اگر بخواهید بهری رو بشناسید وزن بهری رو بشناسید این ممکن نیست مگر اینکه شما بتونید تقطی کنید یعنی چی یعنی مثلا شما الان اون ان نشانه عکه و ال شما او علامت خط تیره و یو رو نگاه کنید کنار همینطوری ردیف آمده خب شما باید مثلا تشخیص بدید که یه دونه یو دوتا خط تیره میشه فعولان بتونید تقسیم کنید درست شد پس بنابراین پس بنابراین اصل داستان بر اینه که شما یه بیتی رو که تقطی کردید ها این بیت رو یه سری علامات به دست میاد بتونید اونا تقطی کنید یعنی تفعیل‌هاشو در بیارید بگید فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن هر کدوم رو جدا سازی کنید تا بتونید وزن رو تشخیص بدید وزن و تشخیص دادید فعولان مفاعیلن فاعولن بتونید بحر رو تشخیص بدید بگید که بحر تنیم و م با به ملاحظته ان معرفه البهره و نوع وزن هی لایت مولا بالقدره علا فس تفیلات بعض ها ان بعض بنابراین علینا ان نحفظ رموز هاذ تفیلون اینو منم خدمتتون گفتم دیگه اون جلسه قبل برای همین ما لازمه که رموز تفیلات رو تو ذهنمون بسپلیم یادتونم گفتم مثلا فعولن رو تشخیص بدیم که یه یو دو تا خط تیره از دو تا خط تیره یو اما یو وسط این چشم عادت کنه لذا علینا نه بزر رموز ها زه و تغییرات علتی و تطرعو علیها این رموز رو این تختی کردن ها که هر کدوم مثلا مستفعلون اون رموزش چه شکلیه؟ اینا رو به ذهن بسپاریم درست شد؟ حفظا دقیقا یه دقت کامل روش داشته باشیم لایقی با ازهاننا که از ذهن ما نرویرون ولی ایزاه هازا نقط و البیتتالی حالا برای خاطر اینکه نشون بدیم و شما مطلب رو بفهمید این بیتی که الان میخونیم رو تقطیم میکنیم. درست شد؟ الان نگاه کنید بیت به شکل املای عادی نوشته شده یعنی شعر طبق املای عادی نوشته شده این مرحله اولی درست شو؟ مرحله اولی توی شما میبینیم مثلا این مرحله اول رو در امتحام من میدم این بیت رو میدم میگم شما تقدی کنید شما این کارهایی که زیر انجام شده این حال روش انجام میدید و میشه در واقع اون چیزی که ما میخواهیم بهش تا آخر ترم همین میگه زل اقل یشقاف نعیمه به اقل به اقل به ببین دقیق میخونیم و اخل جهالته فش شغاوت یعن امو زل اقل یشقاف نعیمه به اقل و اخل جهالت فش شغاوت یعن اموم میگه زلعقل الان نگاه کنید عقل. یادتونه میگفتیم که این اسمای سته اسمای خمسه موقعی که اضافه بشن واو میافته العقل هم اگه باشه گفتیم که الف اگر الف و لام به حرف قمری بچسبه. همزش هست میشه اینا تمام باید یه چیزایی که خوندیم بتونیم پیاده کنیم زول عقله میگه آدم عاقل یشقا سختی میکشه بدبخت است. فن نعیم در تمام نعمت ها هم که هست به عقلهی به واسطه عقلش به خاطر عقلی که داره همه نعمت هارم که داده باشه داشته باشه این به واسطه اینکه میفهمه در سختی و زحمته میگه آدم عاقل تو این دنیا تو زحمته گرچه همه نعمات رو هم بهش داده باشه تو این دنیا همش سختیه و اخل جهالته اما آدم جاهل اخل جهالته فش شقاوته گرچه در تمام بدبختی ها هست آدم بیعقل دیوانه اگرچه تمام مشکلات عالم رو داره که اولیش همین دیوانگیشه و اقل جهالته فش شقاوت یعنی کیف میکنه احساس راحتی و خوشحال میگه آدم عاقل در سختی و زحمت در همه نعمتها هم که باشه به واسطه عقلش و آدم نادان در تمام بدبختی‌ها هم قوتور باشه این خوشحاله چرا چون نمی‌فهمه خوب خب این شعر رو فهمیدیم از نظر من اما این اولش کتابت چی بود کتابت املاع عادی حالا نگاه کنید زیرش اون خطای عمودی اول نیست دیگه اینا رو بعدا ما بعد از اینکه تقطی کردیم تونستیم بگذاریم فرضیمه که نیست نگاه کنید میگه زل اقل یش با فن نه ای می به اقل هی یعنی این الان املاع این تیکه تیکه تیکه تیکه نوشتیم هر حرف متحرک خودش و هر حرف متحرک ساکن با هم این الان املاع عروزیه. و ا خل جر ها ل ت بش شر قا و ت ین امو. الان نگاه کنیم به عقل هی هی رو نوشتیم اشباه شد ین امو زمه اشباه شد نوشتیم ین تمام اونچه که ما خوندیم در امراه عروضی الان اینجا ما رعایت کردیم درست شو؟ همه رو رعایت کردیم خب این شد الان این شکل نوشتن امراه عروضی بعد از املاع عروزی ما میمیم چیکار میکنیم؟ رمز گذاری میکنیم زل خط تیره عق خط تیره لیو یش خط تیره کا خط تیره فن خط تیره ن یو ای خط تیره م ب دوتا یو عغ خط تیره ل یو هی خط تیره همین پایینی و ا دو یو ا وا ا یو خون یو خل خطیتیره جا یو ها خطتیره لا ت دتا یو فش خط تیره شه یو خطتیره و ت دوتایو یو ین خط تیره ا یو مو خط تیره اینطور رمز گذاری الان نگاه کن ما یه سری خط تیره و یو و یک سری حروف تختی شده داریم خب اگه چشم ما بلد باشه و عادت کنه وقتی نگاه میکنه ببینه دو تا خط تیره مثلا اونتون زل عقل یش آه. فن م مر عقلهی نگاه که میکنه. میبیند دوتا خط تیره. یه یو یه خط تیره. میگه هم. این مصطف تر لون. لون بعد قان فنن ای مصطف ای لون. این ای. این با هم فرقی رو فرف ای. این میگه میشه مو. تا پس مصره اول شد مستفعل مستفعل متفائل میره رو مصره دوم. میبینه که و خل جها جهه متفاوت تف شپا وت ين عمو متفائل میگه خب این مصرع دومش سه تا متفائلون در آمد مثلا مصرع اولشا دو تا مستفعلون یه متفائلون در آمد خب پس معلوم میشه که این وزنش بوده متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل متفائل میگه خب پس چرا اون دوتا مستفعلان در آمد بعدا میخونیم همه داستان داره همش با بهره که برسیم همین بحر رو میخونیم <تصفيق> میگه خب اون دوتا یه تغییر توش شده مثل اینکه مثلا قوله میشه قاله با بیعه بوده شده باعه یقوله یقوله بوده اینا رو تو صرف خوندید اینجا هم همینطوره میگه این مستفعلان در واقع متفاعلان بود بود بوده آمده شده چی بگید مصطف الان یه تغییری توی یعنی از یه بحر اصلی متفاعلان به یه بحر اصلی دیگه تبدیل شده مصطف الان. توی تفعیله اول و دومش اتفاقی افتاده که این اتفاق رو بهش گاهی اوقات میگن زهاف گاهی اوقات میگن علت مثل اونجا که ابدال و اعلال دارید اینجا زهاف و علت اینجا حالا نخوندید از نوع زهافه یاد میگیریم میگیم این توی تفعیل اول و دومش زهاف اتفاق افتاده بعد نوع زهاف اونجا چطور مثلا میگفتید که فرض کنید که عجبف از نوع فلان یا مثال ناقص از نوع فلان توی سر اینجا میگه ازمار اتفاق افتاده زحاف ازمار ولی زحاف ازمار رو ما توی اون بهری که برسیم به این خواهیم خوند درست شد پس بنابراین این بعد از اینکه فهمیدیم متفاقیلون متفاقیلون متفاقیلون بوده حالا میریم به ذهنمون مرزی میکنیم میگیم ما متفایل متفایلن متفایلان متفایل متفایل متفایلون, متفایلون, متفایلون این وزن چه بهری بود؟ اینجا توفس بهکار بیا. میگیم ها بهره کامل بهره کامل که اسمش بهره کامل بود اون 6 تا متفایلون بود؟ بهره رجز شیشتا 6 تا بود ها؟ پس متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن بهره بحر کامل میگیم زیرش می‌نویسیم این بحر کامل است شش تا متفاعلن داره و توی دو تا اول و هم زهاف اتفاق افتاده از نوع از ما. این کل درسی بود که ما می‌خواستیم اینجا تا آخر ترم با هم دیگه که تو یه بک بیاده که واسه این بک بیت, بیت امتحانی بود اینقدر نوشتیم این کامل شد همه آنچه که لازم داشتیم رو ازش درباریم که اچه حالا وقتی به بحر کامل برسیم مثال های متعدد حل میکنیم جاهایی که زحاف و علت اتفاق افتاده تحریرات رو نشون میدیم چند تا تمرین که حل کنید شما دیگه بحر کامل تو تو میمونه مثل که عجبف تو ذهنتون میمونه حالا اگر قاله رو دیدی میگینی عجبف خافرم دیدی میگی عجبف خوب. پس بنابراین فهمیدیم که این بهرش بهره کامله اجزای بیت شعر خب این دیگه اینجا باید اصطلاحات یاد بگیریم یه دونه بیت الان ما بالا دیدیم این بیت یه سری اجزایی داره اجزایشو باید بزنید بسپوریم دیگه چون دیگه بعد از این من نمیگم مثلا اول بیت آخر بیت وسط بیت اونجا ها هر کدوم اسم داره مثل اینکه سر شما میگه فاولفل اینولفل لامولفل دیگه مشخص میکنید دیگه اینجا میگه اجزای بیت و شعری ینقسم و البیت و شعری یا الاشتره اینه متصاویه یه بیت شعر به دو نصفه متساوی تقسیم میشه که بهش میگن مصرع قالب در قالب اوقات که شعر کلاسیک و قدیم میگیم ما شعری که داریم دو تا مصرع داره مصرع اول مصرع دوم غالبا اینطوری یوسم ما اوله و ما صدر مصرع اول رو بهش میگن صدر بید پس دیگه اگه ما گفتیم در صدرش مثلا زهاف اتفاق افتاده شما دیگه باید بدونی کجا تقریبا مثلا میگیم تفعیله زهافدار دار در صدر بیت، شما میگی در مصرع اول. یوسم ما اولو ما از صدر. و سانی العجز، دومی رو بهش میگیم عجز. میگیم در عجز بیت هیچ گونه زهافی وجود نداره. مثلا تو این بیت بالا فقط یطلق على الشطر سواء كان صدرا ام عجزا المصرا اما گای اوقات به صدر بیت یا عجز بیت به هر دوتا میگن مصرا پس اگر مصرا بگن باید صفت بذارن بگن مصرا اول مصرا دوم یا شطر اگر بگن باید بگن شتر اول شطر دوم ولی اگه از صدر بگم دیگه نیازی به اول و دوم نداره چون صدر یعنی نیمه اول بیت اجاز یعنی نیمه دومه بگید درست شد؟ پس مصرا مطلقه ممکنه اطلاق به مصرای اول بشه مصرای دوم بشه لازه اول و دوم میخواد اما صدر و اجاز این خودش خاصه صدر مال مصرای اوله اجاز مال مصرای دومه این اولی استلاح دید. آخر و تفعیلت من از صدر آخر تفعیله صدر برست شد؟ یقال لها الاروز بهش میگن عروس یعنی نگاه کن الان تو اون بیت بالا زل عقل یشقاف نیمه به عقلهی خب این صدره آخرین تفعیلش میشه مه به عقلهی این آخر, آخر و من منستزه یقال لها عروز بهش میگن عروز بید و آخر و من منل عجز لها لحا از زرب و آخرین تفعیله عجز رو بهش میگن ضرب یعنی و اخل جهاو لطف شقاو و تیان عمو. اون و تیان عمو. اون متفاعلون اون زرب پس الان در این بیت بالا که از نوع بهر کامل بود آن تفعیلهٔ سوم شد عروض و تفعیله ششم شد زرد و ما عدی ذالک هرچه غیر از این دوتا باشه یعنی اون مستفعلن مستفعلن توی صدر بیت تو بالا متفائلن متفایلن توی عجاز بیت تو اون بیت بالا این حال چی بهش میگن و ما عدازالک یوغاللهو هل هش بود بهش میگن هش بود. پس بعد از این اگر من گفتم در عروض بیت ما ذحاف داریم شما بدونید کجاست میشه آخرین تفعیله صدر اگر گفتم در ضرب بیت مثلا زهاف داریم باید بدونید کجاست میشه در آخرین تفعیله عجز اگه گفتیم تو هشب بیتشید چی نیست ها بدونید هشف چیه هشف تفعیله قبل از عروض و قبل از زرب اینا کلماتیه که الو با چشمتونم ببینیم وله حرف و لذی اون حرفی که قصیده روش بنا میشه اینو بلدی مثلا توی اون بیت بالا ینعمو اونمین که مثلا توی بیت بعدی هم اومده یعلمو یا اون میم درست شد تو بعدیش اومده یسلما مثلا میم او اون حرفی که والحرف الذی تبنا علیه القصیدتو و یختم و قصیده باش ساخته میشه و پایان پیدا میکنه غالبا درست شد و یختم بهی غالبا آخر کل بیت منها ما نگاه میکنیم همه بیت میگن این قصیده امروال لامی است نگاه میکنیم این سمت چپش آخر بیت لام لام لام لام همه لام داره. درست شد؟ پس نامیده میشه ول حرف لذی توب نا علیه القصیده تو و یختم و بهی غالبا آخر و کل بیت منها یو سما ار به این حرف میگن حرف روی از رعیت رعیت یعنی فکر چرا به این میگن حرف روی؟ چون شاعر فکر میکنه که این حرف درست کنه بقیه گروف براش خیلی چیزی میاد بزن. چیزش وزنش مهمه اینجا خود حرفه مهمه رو این فکر میکنه نزا قافیه میگن تنگ میاد اینجا چون داره روی این حرف فکر میکنه که میم بیاره که قافیه وزن بیتش درست بشه میگه غالبا آخر و گل بیتن بینها ما عربی. حالا نگاه کنی این اصطلاحات دیدید ولو عجره نهاز هل اصطلاحات علال بیت سابق اگر ما این اصطلاحات رو بر بیت قبل پیاده کنیم که من بیاده کردم الازی قطع اناهو که ما تقطیش کردیم لکان علال نحجت تالی به این شکل میشه که شما بود مصطف علال مصطف علال متفاعلان متفاعلان متفاعلان متفاعلان اون متفاعلان سه متفاعلن ششم میشه زر مستفعلن مستفعلن و متفال متفاعلن قبل از این دوتا تا میشه 8 اون نصفه اولو بهش میگن از صدر یا بهش میگن المصرا یا الشطر اون موقع بر ال اول بیاره. و به مصرع دوم میگن ال می میبینید ولی اگر مصرا یا شطر بگی باید از ثانی صفت رو بیاری قولشیدم انا همین هیچ اصطلاحات کل قبلی اصطلاحات رو یاد گرفتم حالا الان یه چندتا اصطلاح دیگر رو می‌خوایم به شما یاد بدیم. میگه ول بیتو اذا استوفا کل تفعیلاته یقال له اتمام. اگر یه بیت تمام تفعیل‌هاش باشه. م? یعنی مثلا بحر کامل خب 6 تا تفعیل داره کمل الجمال منال بحور کامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 6 تا متفاعلن در میشه بحر کامل حالا اگر این 6 تا همشون باشه مثل همین بیتی که الان دیدیم همشون باشن 6 تاش خب و بیت و است اوفا کل تفیلاتی یغال له لهو بهش میگن بیت تام یعنی الان این بیت بیت تام بود. هیچی از تفعیلهاش هاش نشده همه سرجا شیشتاش بود. بهش میگن بیت تام پس اگر شما بهشون بهتون گفتن این بهل تام کامله، یعنی بحر کامله یعنی متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن تام یعنی هر شیشتاشون هست اصطلاح رو یاد گرفت مل به 2000 استوفا کل تفعیلاته ی یقال له تام. وقتی که همه تفعیلهاش باشه بهش میگن تام و اذا حذف تفعيله من کل شطر منه ولی گاهی اوقات شاعر میاد اینا هست میگن به قول خودمون انواع اون بحر کامله یعنی بحر کامله که میخونی خودش دوسه نوع داره ها. یه نوعش اینه که مثلا یه تفعيله از هر طرفش حذف شده یعنی وزنش کوتاهتر شده بعضی شعرها رو دیدید این اون ورش خیلی کوتاهه ها این همون مزن بلند بوده ولی شاعر آمده از کوتاه اون استفاده کنه مثل اینکه یک لیوان بلندی سایز بالا بوده حالا عین همون یه سایز کوچیک‌ترش هم اجازه دادن قالب ریزی شده میگه من کل یقال له پس اگر گفتن این مجزوع کامله یعنی چی؟ یعنی بگن کامله یعنی این وره مصرهش متفایلون, متفایلون اون ورش هم متفایلون متفایلون به جای ستا و ستا دو تا و دو تا و تا هست از هر طرف یه دونه افتاد درست شد پس اگر یه تفعیل حذف شد از هر طرف بهش میگن مجزوع یعنی جزئی از او حذف شده جزئی از او بگو حذف شده اینم یاد گرفت. میده تا هم بفهمیدیم. یعنی همه تفعیل هاش هست مجزوع رو فهمیدیم یعنی یک جز ازش حصف و قد قد در سر فریموزاره یعنی گاهی کم میشه ولی هست فقط قد یه هزف و نصفه گاهی و نصف تفعیله ها میشه م? یه بیت نصفش هست شد. خب این البته نباید مثلا تایی باشه چون تایی باشه نمیشه یکی و نصفی از این برا حصف یکی نصفیه ولی اگه مثلا هشتایی باشه میشه ماان مثلا بهره طویل رو اون جلسه مثلا اول نمونه ای همینطوری بایم باتون بوده فعولان مفیلان، فعولان مفیلان، فعولان مفیلان، فعولان مفیلان. خب حالا اگر فعولان مفایلان فعولان مفیلان یه دونه فعولان مفایلان از این ور یه دونه فعولان مفیلان از اون ور بیفته این بیت نصف خودش از دست داده ها. و قره یخزف و نصفه نصف بیت هست میشه و و یقال اللهو المشتور بهش میگن مشتور پس اگر کلش باشه تفعیلاتش میشه بیتتان اگر یه جز از این و یه جز از اون و هست بشه میشه مجزور اگر نصفش هست بشه نصفیه از تفعیله ها از این ور هست نصفی از تفعیله ها از اون ور گفتیم وقتی میخواد نصف هست بشه باید یه عددی باشه که بتونه نصف بشه یعنی چهارتا تفعیله باشه که بشه نصفش کنی بشه دوتا اون موقع بهش میگن مشتور یعنی نصف شده خب بازم داری این پله او سلساه سلساه ها به جای نصفه هست اما گاهی اوقات میشه که یه بیتی دو میشه. خب وقتی بیه دو سالش هم از میشه این باید خودش سالس باشه که دو سالش هم بشه مثلا سه تا مسرااییم و سه تا تفعیل این ور باشه تو مسراای اول و سه تا تفیلیه تو مسراای دوم دو تا از این ور هست شده دو تا از اون ور یعنی به جایی که بشه متفايلان متفايلان متفايلان متفايلان متفايلان متفايلان سه تا این مثلاً یه متفايلان این ور مونده یه و خیلی دیگه کوتاه شده بیت تاام درست شد؟ به این چی میگن اگر یک سومش باقی مونده باشه، دو صش ویغال نهو من منهوک بهش میگن منهوک منهوک من لاغر یعنی خیلی لاغر شده دیگه انگار وزنش صد کیلو بوده شده سی کیلو درست شد؟ پس اگر کلش باشه تفعیل ها میگن چی بهش تام؟ اگه یه جزء از این ور و یه جزء از اون ور حذف شده باشه بهش چی میگن؟ بهش میگن مجذور. یه تفعیل از این بده. اگر نصف ها از این ور و نصف ها از اون ور هست شده باشه بهش میگن چی؟ میگن مشطور. اگر دو سوم ها از مصرع اول و دو سوم ها از مصرع دوم هست شده باشه بهش میگن منحوک. این چهار تا اصطلاحه. درستو منحوک. تمامه؟ اصطلاح بعدی و اذا اتحد صدر البيت و عجزه في حرف الروي اینو تو جلسه رفتمنو اگر صدر بیت صدر بیت خب یعنی مصرع اول و اجازه بیت یعنی مصرع دوم در حرف الروي مشترک شود چون هر دو حرف الروي جهتون باشه گفتم بیت های اول معمولا دارای زوغافیت این هستن که میخواد خافیه شو بفهانم بسازنن قفا و نبک من منذک را حبیب و منزلی ل به سخت و بین دخول فهوملی ل این طور اگر بیت داشته باشیم که مثل اول و مثل دوم هر دو حرف روی داشته باشن و ازایت ته دست بیت و اجاز فی حرف رویه یو زال کل بیتو مسرع این بیتوش میگن بیت مسرع پس بیت مسرع تعریفش چیه؟ بیت مسرع اصلا تصریع یعنی زینت کردن چون قافیه زینت بیته این زینت بیت رو هم در مصرع اول داره هم در مصرع دوم داره بهش میگن بیت مسرع میگه تسریع او یکونو غالبا اینو اونجا از من گفتم تصریع یعنی زو حرف ربی بودن در مصره اول و مصره دو زو قافیت این بودن این و تسریع و یکون و قالبن درصد قالبن مثل همون قفا که شعر امرون غیست اولین بیتش ودتسریع و یکون و قالبن یه اول غصیده در اول غصیده اون, اون بیت اول معمولاً از نوع بیت مسرعه چون شاعر مخواد قافیهشت رو به خاننده تحمیل کنه لذا تو دو جا قافیهشو میاره بعد از اون دیگه نه الان مثلا قفا که من ذکرا حبیبن و منزلی به سخت بین الدخول دخول فهوملی دوتا قافیه داشت اما فتو زحف المقرات لم یعف موها رسموها نداره لما ها من جنوب و علی داره تابید میرا همین طور پایین. اول قصیده، فی اول القصیده. در اول قصیده. حالا مثال میزنه، یه بیت مثلا مثال بزنه که بیت اول یه قصیده است مال آقای متنبیه و بیت مصری. آیا اینو غالبا مصرع بیت اول مصریه؟ آیا میتونه بیت های دیگه هم باشه؟ بله من گفتم تو شعر مرقیز هم چند تو دیگه در راقلاش میبینید تو همون لامیت و الان نگاه کنید نه با قول المتنبی این اول قصید است بیت اول میگه توالغنن توالغنن تطاینوها تو توالغنن تا اینها قصار و قطر و کفی ندن و وقن بهار الان نگاه کن قصار بهار یه قافیه رو میبینید دیگه اینو خوندیم قصار رو اونم میشه بهار رو آیا دارای حرف روی هست یا نیست؟ بله اولین بیت اما بیت بعد دیگه جای قصار دیگه این حرف روی نیست فقط جای بهار هست تا آخر این بهش بیت, بیت مسرع میگه توال و قنن بنا جمع قناته توال و قنن قنا جمع قناته اون تا که داره مفرده درست شد نه جمعش قنات یعنی نیزه توال و قنن از نوع اضافه صفت به موصوفه یعنی قنن توال یعنی نیزه های بلند نیزه های بلند تو تا اینوها که تو به کار می اونها رو این صفت قنن توال و غنن تو تا اینوها تو تا اینوها یعنی نیزه زد. تو تا اینوها یعنی نیزه میزنی اونها رو تو جنگ به کار میگید یعنی تستعملها قصار قصار جمع قصیر الان بین توال و قصار سنت تباخ هست اون توال و قنن مبتداست این تو تاینه ها صفت لنن اون قصارو خبره. چی گفت؟ ببینید اگر یک نفری کوتاه قد باشه مثلا خودش یه متر 50 سانت باشه این نیزه که دستش میگیره نمیتونه یه نیزه دو متری دست بگیره چون خیلی سخته نمیتونه بچنگی مجبور نیزاش کوتاه باشه یه بتو مثلا 20 سانتی دست بگیره ولی اگر یک نفر خودش قدش بلند باشه رشید باشه چون رشید بودن و خیلی توی شجاعت مدخلیت منه خب این آدم رشید که خودش دو متر قدش بلنده توانمنده این نیزه‌ای که دست بگیره دوم دومت تو 20 سانت باشه خب نیزه اگه بلند باشه خیلی راحتتر دشمن رو به قول خودمون از پادر میارید میگه نیزه‌های بلندی که تو تو میدون جنگ به کار میگیری همهشون نسبت به قد تو و قباره تو کوتاه. مثل اینکه یه نفر انگاه قدش بلند و هر کیفی میدی دستش مثل این که مثلا انگاه کیفی بچه مدرسه ای رو دستگیر بخواه بگه تو خیلی قد بلند توانمند شجاع این های بلند تو دست تو کوچیک دیده میشه گرفتی چی با توالو غنن تو قصا رو و قد رو کرد قد رو کرد یعنی ریختن قطره تو قطره که تو میریزی فی ندن ندا یعنی کرم وقا یعنی میدان جنگ چون آدم کریم رو تشبیه میکنن به دریا دریا قطراتی داره و جنگ رو هم خونریزی داره قطرات داره میگه قطره که در کرم از تو دریا میچکد. و قطره هایی که در میدان جنگ از شمشیر تو میچکد این قطره های تو بهارون خودش دریاست قطره کرم تو یه دریاست قطره از خونی که تو تو میدان جنگ میریزی یه دریاست پشت بعد می‌کنه بهارون های. قطره ریختن های تو دریاست قطره های تو قطراتی که تو میریزی در کرم و در میدان جنگ دریاهایی به حساب می آیید خب این بیت رو میگن بیت مصرد اولین بیت هم هست روح آفیته ای. این اصطلاح هم تموم شد بیت مصرد حالا یه اسطلاح دیگه و ازا اشترک شطراهو یعنی مصراهو یعنی صدر رو عجز این کلمت واحدته در یک کلمه یوسما مدفر حالا بیت مدفر چیه؟ نمیدونم شما دیدید بیت هایی رو یا نه بیت هایی هستش که مثلا این مصره با اون مصره که میخونی بعد مثلا آخر مصره اول آمده مثلا نخستین نخستش افتاده این ور شد؟ یا نخست افتاده این ور تین افتاده اون ور از نظر وزنی که وسط این دو تا نقطه چی میزنن که یعنی نخست بعد اون برنامه نوشته تیم بیت شروع شد یعنی مصر بعد شروع شد یک کلمه نصف شده یک قسمتش افتاده توی مصر اول یک قسمتش افتاده توی مصر دوم این بی میگن بیت مدور و این عملو بهش میگن تدویر درست شد میگام کنید و که شطرها اگر دو شطر بیت یعنی دو مصراش در یک کلمه واحد با هم دیگه مشترک باشند یو سنبا مدورند نه و قول ابن المعتز مثل قول آقای ابن المعتز یمده و علیه که مورد مده قرار داده علی یمده و علیه امیر المومنی رو مد کرد حالا به چی گفته مجلل کروب یعنی هوه مجلل کروب، علیون مجلل کروب، خبر مبتده های محضوبه. مجلی یعنی مکشف کروب جمع کربه یعنی مصیبت یعنی کاشف تمام مصیبت ها یعنی مصیبت ها رو همه را از ببینه یک شفت سو درست شد مجلل کروب، ملعی سل هروب. حروب را نگاه کن حروب جمع حربه جنگ خروش افتاده این وقت این بیت مدفد لعیس یعنی شیر و شیر میدانهای جنگ پس در هم مصیبت ها کاشف و برطرف کننده مصیبت ها و شیر میدانهای جنگ به رهج سات ال از خدیم خب شیر میدان جنگ است در فر رهج در قواری که بلند شده و سیاه در قوار سیاه میدان جنگ در قوبار تاریک میدان جنگ قبار تاریک میدان جنگریه اون موقع که خیلی هست خبامیرن و جنگ شدت پیدا کرده یعنی در شدت جنگ اون شیر میدان جنگ آه بعضی شیر میدان جنگ تا جنگ شروع نشده را بعد بفر. نه امیر نه امیرالمومنین شیر میدان هاست در موقعی که گرد و خاک شده اونم گرد و خاک تاریک آه گرد و خاک تیره شدت پیدا کرده و شد خب اینم فهمید حالا این تیکه که الان میخوام بخونم درست شد این اصطلاحات بود دیگه مینورتین نصفت یاد که اصطلاح رفز کردن دیگه چیزی نداری از اینجا به بعد دو تا مبحث داره یکی معمت معمت تعلف و تفیلات تفیلله هایی که خوندی مثلا مستف الان مستف الان مستفان این مستفر یا متفاعلا امروز دیدیم این از چه جززایی تشکیل شده. اینا یه اسماییدارن اسمهایی دارن این اسم هم باز یاد پر بگیرید. میگه معمت تعلف و تفیلات ها از چی تشکیل شده؟ یعنی مثلا مستف الان از چی تشکیل شده؟ ما یادتون باشین گفتیم ماض. عف اهل من گفتم دوتا خط تیره یه دونه یو یه خط تیره اینکه اینجوری که کسی نمیگه که آه. بلکه اون خط تیره ها اسم دارن اون یو اسم داره آن دیگه ما یو نمیگیم خط تیره نمیگیم اصطلاح داره ممتا و تفیلات تتالف التفعیلات و السمانیت و این تفعیله های هشگانه اصلی بعدشمون بقیه فریعی ها فرقه میکنه من منمقات از صوتیت از سیلاب های صدا تشکیش از سیلاب های صدایی تشکیم بخش کما رعینا وقت سماها علی اروزیون اسباب اسبابه ولی اوتا عروزی ها اسم این بخش ها این تیره یو اسم اینها رو گذاشتن اسباب اوتاد بعضی رو گفتن سبب بعضی رو گفتن وطد مثلا فرس کن به خط تیره بگن سبب خب مثلا خودش یکی دونو مثلا به یو بگن وطد حالا اینا اصطلاح می‌بینیم میتونید اون موقع بفر وقت سماه علا عروضی یو نب بله اسبابه یو هم منامن تقسیمات هم هم اونی که برای ما مهم و از تقسیماتی که اونها گذاشتن سبب و وطت اسم گذاشتن ایناست یک دو سه داشت یک دو سه سبب کدومه سبب میگه از سببون خفیف داریم و از سببون سقیل یه سبب خفیف داریم یه سبب سقیل داریم خب سبب خفیف کدومه؟ و هو یه تعلق من حرف اینه اول و هما کن و سانی ساکن سبب خفیف اونیه که اولش متحرک که دومش ساکن به شکل خط تیره نوشتوش نه و بل بل و الان شما بخواه یه خط تیره ان یه خط تیره یور مزویله بالعلامت علامت تیره داشو. پس بنابر این سبب خفیف عبارت است از بگید خط تیره خط تیره خط سبب خفیف سبب ثبیل چیه و هو و من حرفين متحركين اگه دو تا حرف متحرک پشت سر هم بیاد دو تا یو میشه سبب ثقیل ن و مع یه مع داریم و مع میشه دو تا یو لکه میشه دو تا یو و یور مزایریه به علامت دو تا یو خب پس اگر یه خط تیره دیدیم این سبب خفیفه دوتا یو کنار هم آمد میشه سبب بگید سقیل بعدم آنه دو دوتا یو سبب سقیل این تفعیله رو نگاه کنید خوش رو دو دوتا یو سبب خفیفش رو نگاه کنید میفهمید که کجا سه الوتدول مجموع متد مجموع متد مجموع کدومه و هویت علف همه سلاسه احرفه. متد مجموع از سه تا حرف تشکیل شد اول و ها و ثانی ها متحرکان اول و دوم ها متحرکان و ثالثو ساکن ثومی ساکن و وقتی بخواد بنویسیمش یه یو میشه یه خط تیره نه و الا الا ای لا بنویسیم ای میشه یه یعنی یو لا میشه یه خط تیره الا میشه یه یو یه خط تیره و یور و الهه علامت یو و خط تیره شو. حالا نگاه کنید برگردید توی اون صفحه قبل تو اون بیتی که داشتیم زل عقل یش خاف به و عقلهی نگاه کنید تو اون مصره دومش که بود متفاعلون متفاعلون, متفاعلون. یه متفاعلونشو نگاه کنید متفاعلون موت تا. تا یو این چیه؟ سبب سبیل فا متفا. یه چیه؟ سبب خفیف اعلان این چیه؟ وتد مجموع یعنی یه متفاعلن هم تشکیل شده از سبب سریل، هم سبب خفیف هم وتد مجموع این سه تا اصطلاح توی متفاعلن کنار هم چیه جمع شد مشخص شده نه هر تاش توی این متفاعلن هست برای اینکه بتونید این اصطلاح سبب خفیف سبب ثقیل و وطد مجموع رو یاد بگیرید من متفاعلان رو برای شما بوده. اما مثلا مصطف علانشون نگاه کنیم مصطف الان از دو تا سبب خفیف تشکیل شده یه وطد مجموع بالاشد دو تا سبب خفیف مصطف یه وطد مجموع اعلان درست شو؟ بقیه هم همینطوره از سبب سبیل سبب خفیف و وطد مجموع این تیکه هم تمام اصطلاح بود می‌دونه فیلسفیه ابن اما این مبحثی که الان می‌خونیم یه مقداری برای خوندن بحر که بعداً می‌خونیم همه اونها لازم اینجا دیگه داریم در واقع می‌خوایم بگیم مثلا اعلال چیه ابدال چیه و تغییرات رو می‌خوایم بگیم که شما بدونید بعد میریم توی بیت صد بار اینها رو تکرار میگه از تغییرات و تاره و تغییرات تغییراتی که آرز میشه بر تفیلات تغییراتی که آرز میشه بر تفیلات تغییراتی که آرز میشه بر تفیلات تغییرات و تاریخ و قد حق و حاض تفیلات تغییراتی که آرز میشه بعد تییلات قدال حق و حاض تفیلات از زمان قد حق و حظ تفیلات از... و از نکن و تفیلات ت ت از ت... تغییراتون. اون تغییراتون آهل یلحبوز گاهی آرز میشه بر این تفعیله های گانه تغییراتی یعنی دیدید دیگه شما متفاعلان توی بیت قبلی تبدیل شده بود به مستفعلن ما گفتیم اسم این چی بوده؟ گفتیم گفتیم اسمش بوده زحاف گفتیم نوعش چی بوده مثلا ازمار گفتیم اینطوری اتفاق افتاده که به جای متفاعلان متفاعلان اول و دوم مستفعلن علان مصطف برای لغو هزه تفیلاته از سمانیت تغییرات اما به نقصان حالا این تغییرات یا با نقصان اما به نقصان و اما به زیاده یا با نقصانه یعنی قویات کم میشه یعنی یه چیزی حذف میشه حالا یا حرکه حذف میشه یا حرف حذف میشه و اما به زیاده یا یه چیزی اضافه میشه. شخص یا یه چیزی کم میشه یا یه چیزی بگید اضافه میشه قلیل حق و حاضر تفعیلات از زمانیتا تغییراتون. اما به کم میشه مثلا فعولان یادتونه وقتی که تو اون تفعیله های فریش میدیدین فعولان شد فعول لو. بعد دوباره شد فعول یعنی یه بار یه حرف افتاد فعولان نونش افتاد یه بارم هم نون افتاد هم حرکه افتاد شد فعول ناقص شد حالا گای اوقات هم اضافه میشه یه چیزی و اما به زیاده ام. اینا قاعده در ها یعنی دست ما نیست اون وضعه فرعی که شما دیدید یا اضافه شده بود یا کم شده و توسن ماهازه تغییرات و اتاره اتو این تغییراتی که تاره هست و آرز شده بهش میگن زهافات یا زحافات که زهافات بهتره او ایلنن بهش زحافو ایلن میگن یه نوع تغییر رو مثل یکی میگن اعلال یکی رو میگن ابدال. زحافات او الالا فماهو و زحاف ازن و ما ولله ماهی ولله و زحاف چیه؟ علت چیه؟ مثل یکی میگن اعلال چیه؟ ابدال چیه؟ خب اعلال مثلا میگیم که حرف الهی تغییر پیدا کنه به حرف دیگری ابدال میگیم نه حرف سالمی و حرف سالم دیگه ای تبدیل بشه دونشون میسه تبدیل و حرف سالم از زحافات و ولی علم بحث آخر مست از زحاف خوه تقییر یل و سوان اسباب فقط خوب. به ذهب داشته باشیم زهاب تغییریه که به دومین حرف سبب سببها میاد فقط اصلا با وقت کاری نداد سبب کدوم بود یا یه خط تیره سبب خفیف یا دو تا یو سبب به دومیش داخل میشه یعنی اگه سبب خفیف باشه به اون ساکنه چون یه متحرک ساکن میشه خط تیره دیگه اگه سبب سقیل باشه به اون متحرک دوم پس زهاف تغییریه که میرسد به دومین حرف سبب خو فقط حالا به اون دومین حرف میرسه اما به حذف ساکن یا میاد اون دومی که ساکنه حذفش میکنه او اسکان المتحرک یعنی اگر سبب خفیف باشه حرف ساکنه رو حذف میکنه اگر سبب سقیل باشه حرف دوم رو که متحرکه ساکن میکنه حرف دوم که متحرکه اونا چکارش میکنه بگید ساکن درست اما به حذف ساکن او اسکانر متحرکه خب فهمیدیم الان که زهاف تغییریه که به دومین حرف سبب داخل میشه فقط حالا اگه دومین حرف ساکن باشه حذفش میکنه متحرک باشه ساکنش میکنه و قویت خلو تفعیلات کل کلها هشون و عروزن و ضربن این هم یاد بگیریم این ها به های بیت داخل میشه حالا در هش باشه داخل میشه در ضرب باشه داخل میشه در عروض باشه داخل میشه یعنی کلش یعنی همه جای بیت یعنی الان شیشتا تفعیله که شما تو اون بیت میدیدید همهش ممکنه زهاف بهش داخلش گرچه ما تو این بیتی که زل عقل یشقا بود فقط تو هشفش اونم توی مصرهای اول داخل شده بود ولی ممکنه همه جا بیاد. پس زهاف میتونه همه جا بیاد. و قویت خلو تفعیلات البیته تلویت کلها هشفن و عروض و این یه مطلب داشته باش اما ولا که نهو لا یلزمون ولی یادمونم باشه که زهاف لازم نیست یعنی چی لازم نیست؟ این نه که لازم نیست بیاید یا بیا بیا بیا بیا نه نه نه زحاف اگر تو یه بیتی آمد درست شد؟ لازم نیستش شاعر بهش ملتزم بشه تو بیت بعد یا تو مصره بعد همون جایی اینو تکرار کنه لا يلزمون اینه زهاف مثل رمز بار مصرفه میتونه برای بار, بار دوم هم استفاده کنه اما لازم نیست تو این بیت الان مثلا این بیتی که داشت میگفت زل عقل گشاف نعیم به عقلی و عقل جهالت فش شقاوت ینعمو یعنی تو اون مصرع اولش نیاز داشت از زهاف استفاده کنه توی تفعیل اول دوم استفاده کنه دیگه حساب حالا بیت بعدی ممکن اصلا نیازی نداشته باشه استفاده نمی کنه. یا بیت بعدی جای دیگه استفاده کنیم زهاف لازم و به گردن شاعر نیست که اون رو ادامه بده که نهو لایلزم ای منای اینه ای و دخل فی دخلافی تفعیلت المسرائل اول اگر در تفعیله مسرائل اول داخل شد من بیت از یه بیت لازم و دخولهو فی, تف... فی تفعیلت المقابلت لها ن لازمه که در تفیلی مقابل بیاد مثل مسلاعسانی و کذا یازم دخوره هوت تفیل ات المقابلت لاها در بیت لذیعی. همچنین تو بیت بعدی هم در اون جایی که باید مثل این باشه نیازم نداره بیاد. الان نگاه کنید نگاه کنید مثلا این زل اغله یش قاف نایم و اغله هی و خل جهالت فشوابات یعناموت مثل اول تو یک کدوشوم اد تو مثل دومش دیگه تو یک و دو نایی منده حالا تو بیت بعدی تو مصر اولش که یک و دوه که مقابل اینه باز لزومی نداره بیان شاید دلیلی نداره که بخواهد بگید ملتظمه به اون باشه نه و با مثال متفائلان که شما دیدید فا این نزده ها فی نید خلا سببها از سقیل وقتی زهاف داخل به سبب سقیلش میشه که این دومی یو رو ساکن میکنه خب وقتی دومی یو ساکن بشه یه متحرده که ساکن میشه سبب خفیف میشه یه خط تیره میشه مصطفیل همین چیزی که ما توی این بیت قبلی دیدیم و یوسکنو سانیه هو المتنعرده کرد و ساکن میکنه اون حرف دوم متحرک شد یا حول و سبب خفیف اونو تبدیل به سبب خفیف میکنه و تصفه ها الان که شما دیدید و کذا باق تفعیلات در بقیه تفعیل هم داخل همینطوره درست شد فلا تبقا ثابتتا مشخص ثابت نمیمونه فلکل من ها زهاب. حالا میگاه کنید حالا اگر زهاب داخل بشه به تفقیل هایی که هستن در عبیات درست شد اینها دیگه ثابت نمیمونن تغییرات توشون داده میشه اما یادتون باشه زحاف ها انواع دارن میشخص شد مثلا زحاف ازمار مثلا به اول فرز کن داخل میشه زحاف دیگری داریم مثلا زحاف کذا اون یه جوری دیگه است هر کدوم از این بهرها یه نوع زحاف دارن یه نوع تغییراتی دارن فله کلمن ها ظافون، یخ ها هر کدوم از این تیله ها ظحافی دارن مثلا متفاعان ذهافش ظاف زحاف ازمار تبدیل شد به مستقللا. حالا ممکن فعولان ظافش یه نوع دیگه باش. درست شو فله کلنمن ها زافون، یخت ها و یغیرها غیر ها الات اونو تبدیلش میکنه به تفعیله دیگه حالا اون تفعیله دیگه اصلیت اون تفعیل دوم که ساخته میشه گاهی اوقات اصلیه گاهی اوقات... مثلا تو متفایلان تفعیلی که ساخته شد مصطفالان اصلی بود ولی یه جای دیگه ممکنه فا... فعولان باشه تغییرش بده به فعولو این فرعیه درست شو پس تغییر میده اون رو از شکل زهاف تغییر میده اون تفعیل رو از شکل اصلی به اصلی یا از شکل اصلی به درست شد یکی از اینها رو تغییر خواهد داد پس بنابراین ما اینجا یاد گرفتیم که زهاف ها متعددند درست شد زحاف ها متعددند باید اونها رو به خاطر بسپاریم زهافها به همه جای بیت داخل میشن درست شد؟ حالا چه در حشف چه در عروض چه در زر و هر کدوم هم زحاف خودش رو داره باید یاد بگیریم که تو هر کدوم از را بخونیم شما یاد میگیرید و بعد هم گفتیم تغییر میده تفعیله رو حالا به یه تفعیله اصلی یا یه تفعیله فرعی خب این تا اینجا نگاه کنیه علت چیه الالتو وحیه تغییرون خب زحاف و خصوصیت چون رسیم همه زحاف اگه شما خصوصیت چون بخواد بنویسی میشه یه خط مثلا این این این شده. مثلا زهاف فقط به سبب داخل میشه درات شدونه به دومین حرفش زهاف لازم نیست زحاف در هش و عروض و ضرب داخل میشه همین علت چی؟ علت و هیت تغییرن یلحقوا از سبب و علت. این برقراره. اما علت هم به سبب داخل میشه هم به علت. یعنی هم سبب ثقيل هم سبب خفیف هم علت میتونه علت بشه اون یک. اما به زیادته و اما به نقصان. حالا یا با زیاده یعنی یه چیز اضافه میکنه تو علت یا کم میکنه ولی در مورد درست شد ما سبب داشتیم فقط نقصان بود حالا یا حرف را میکرد یا حرکت رو حس میکرد آه. این ساکن میکرد یا حذف میکرد نقصان بود در ذهاب اما در این هم زیاد است هم نقصان اما به زیادته و اما به نقصان و تخترسو به تفعیلت عروض البيت و ضرب علت فقط به عروض داخل میشد و ضرب اونجا هم به هشت داخل میشد هم به ضرب هم به عروض پس این با هم دارن اون. اون فقط به سبب داخل میشد این هم به سبب هم به غطا اون فقط با نقصان بود این هم با نقصان هم بازی اون به حش و عروض و ضرب داخل میشد این فقط به عروض و زر کار داره به تفعیله های آخر مصر اما به اون اوایلش که هشوه کاری نداره و اذا دخلت فی تفعیلت ضرب ال الاوله من منال و اگه داخل بشه به تفعیله ضرب بیت اول از قصیده یجب علی علش شاعر ان یلتز ما به ها فی قصیدتهی و لا یجوز له ان یخرج منها آه این واجبه. اون وقات واجب نیست اگر داخل شد دیگه لزومی نداره شاعر اینجا یه بار مصرف است این یه بار مصرف نیست. این اگر شاعر اینو در ضرب قصیدش استفاده کرد تو بیت اول تو ضرب قصیده استفاده کرد دیگه باید تا آخر مثلا فرض کن فرض کن فرض کن آخرین تفعیله درست شد مصرع او بود متفایلون این متفایلون رو تغییر داد کردش مفایلون مثلا با علت دیگه تا آخر هر هرچی بیت بیاره باید اون آخرش بشه مفایلون واجبه که ادامه بده درست شد و از دخلت فی تفعیلت زرب الویت الوله در تفعیله زرب بیت اول داخلش از غسیده یجب علی علش شاعرانی ها فی غسیده ولای یجوز لهو نه و زیادت حرف ساکنین علی آخر تفعیلت فایلان الان فایلان یه وزن اصلی بود دیگه فائلن فرض کنید آخرین تفعیله بیته ایشون به جای گفته چی؟ گفته فائلان یه چیزی اضافه کرد دیگه تا آخر عبیات. هر هرچی پنجاه تا بیتم گفته آخریش باید بشه فایلان فایلان فایلان فایلان واجبه شو. و تصیل و فایلان یا نه او اسقاط سبب خفیف من آخر تفعیله گفتیم یا با زیاده است یا با نقصان دیگه حالا اگر اومد یه چیزی کم کرد مثلا مفایلان خب این مفایلان یه دونه اون خط تیره آخر رو بردار درست شو. خب یه دونه خط تیره آخر رو برداره میشه یه یو دوتا خط تیره درست شد یا به قول خودمون امروز کندیم یه وطد مجموع یه دونه سبب خفیف میشه خب اون موقع میشه فاولان دیگه تا آخر بیت به جای مفایلان باید بگه فاولان فاولان فاولان چه زیاد کنه مثلا فاولان بشه فاولان چه کم کنه مفایلان بشه فاولان اگر در ضرب بیت اول آورد استفاده کرد بهش میگیم دیگه اینو به گردن گرفتی. باید تا آخر بید اینو ادامه بود. جاشم تو گفتیم ضرب است تو عروس. ملاحظتون حالا نگاه کنید ملاحظتون قد یکونو فیهاز حالا نگاه کنید این تیکه که خوندیم گفتیم اینطور مثلا زعاف داریم علت داریم اینا قواعد داره اینها هر کدومشون یه خارج از هم داره مثلا شما فرض کنید فرض کنید یه قبائدی داشتید که موفتش حرف عله متعلق ماقبل بقول خودمون مفتو قلب به علف میشه قبله میشه قاله خویفه میشه خافه اینا رو تو سرف کن. اما یه سری خارج از قائده هم داشت دیگه مثلا فعلی داشت مثل استحوزه خبی اصلا اعلال نشد اینجا هم همینه درست شد ما گفتیم زهاف بعد اینه علت اینه گفتیم که به قول خودمون ذواف خصوصیاتش اینه علت خصوصیاتش اینه. اما این اگه خارج از قاعده هایی هم توی بعضی جاها دارن اون خارج از قاعده ها رو به طور استثناء تذکر سر جاش میگیم شما هم به ذهن میساری میگه ملاحظتون قد یکون فی ها ذواف الغوارض بعضو بعضی از استثناءات فهناکه از ذواف ما هو لازمون بعضی جاها بهش میگن جاری مجرای علت شده یعنی چی جاری مجرای علت شده یعنی باید ادامه بده شایی اه زحافه. اما بگو جاری مجرای علت شده باید ادامهش بود مثلا تو بحر فلان خب این باید یاد کرد استثمارس فخوناکم این از زحاف ما هو لازم میگیم و سموه و سمموه و به زهاف الجاری مجرل علت بهش میگن زهافی که جاری مجرای علت درست شد ومن الالت از اون طرف هم. بعضی از علت ها که حتما باید شاعر به گردن بگیره ادامه بده میشه یک بار مصرف میشه جاری مجرل زحاف هست اشتثناءاتش. و من الالت ما لیسه به لازمت و سموها بالالت الجاریت زهاف زحافی میگن علتی که جاری مجرل زحاف روی استثناءات و سر جاش شما میبینید وقتی سر جاش دیدید به می میسپارید مگه ست تا بهر که نداریم که چند تا بهره شما قواهدشون و وزنشون و استثناءاتشون در خود اون عبیاتی که ما میگیم پیاده میکنید حفظ میکنید تمامید حالا نگاه کنید این تیکه دیگه درس نیست همین مطالب بالا رو جمع کرده یعنی به طور جمع بندی میگه. من خلال بیاننا لزهاف ولی الله از لا بلای صحبت های ما در زهاف و علت یتزه و ان انل فرق بینهما هم فی نقاط تالیه من خلال بیاننا لزهاف ولی اللته یتزه و ان انل فرق بینهما فی نقاط تالیه میبینیم که فرق بین این دوتا در موارد زیره یک از زهاف لا یکونه الا نقصند. ذهاف از نوع نقصه زهاف کم میکنه حالا یا حرکه رو گفتیم میندازه ساکن میکنه یا حرف رو هست میکنه اما وله الله نقصه او بود. اما علت هم اضافه میکرد هم کم میکرد مثلا مفایلون رو دیدید که بالا کرد فعولان فایلون رو کرد فایلون پس این یه فرق. دو فرق دو از زهاف لا یل الا سبب فقط زهاف فقط به سبب داخل میشه حالا سبب سرگیل یا خفیف، اونم به حرف دوبامه میشه. ولی علت تل ال هوا، از سبب اما علت هم به سبب داخل میشه هم به وتد داخل میشه ولی علت تل ال از سبب از زهاف ید خلوالا جمیع تفعیلات البيت. زهاف به تمام تفعیله های بیت داخل میشه هشبند و زربند و عروزان هم در هشبش میادم در زربش میاد هم هم اما ولی الله تختست و به جوزعینه فقط علت تو دو جا بیشتر نمیاد فقط و همه از عروز و زرب. علت فقط دو جاست توی عروز و زرب گفتیم داره اینجا جمع بندی چهار از ذهاب اذا دخل البيت لا یلزم دخوله رو یا حویاته اخراب اگه داخل بشه در بیتی لازم نیست دخولش در حویاته دیگه ظهاب هنگامی که داخل بشه به بیتی لازم نمیاد دخولش در حویاته دیگه ولی علتو یلزم دخول و حافی جمعی حویاته اما علت لازم از داخل شدنش در جمعی حویات قسیده از زهاف اذا دخل البيت لا یلزم دخول و حوفه لعبیاتل زهاف اگه به بیتی داخل بشه لازم نیست تو عبیات دیگه بیان گفتیم یه بار مصرفه اما علت یلزم دخول و حوفی جمعین عبیاتل اما علت نخیر باید ادامه بده قبول کردی باید تا آخر عبیات اون را رعایت کنی و بعد بعد از این همه مطالب و مقدمه فعنل زحافات ولی علاله انواه کسی دادن زحاف انواه داره هر کدومش برای بهری مخصوصه انوا زیاده ولکل اسمون هر کدوم هم نوع هر نوعش یه اسمی داره مثلا من گفتم میگن زحاف ازمار به اون تفعیلهی که داخل بهشمش میگن مزمره این ها خواهیم دیم توی یه دونه بعد مثلا همین درس بعدی که بحر طبیل بگیم همه اینا تکرار میشه یه بار تو تو دو یه دونه بحر دو تا بحر که نگاه کنید دیگه راه میفتید و خودتون بهتر از هر کسی میفن و بعد ولی کسی و لکل نو این اسمون یختصبه هر کدوم اسمی داره مختصبون و سنه تعرف و علال انوائلتی توهم مها و ما آشنا خواهیم شد با اون انواع الزحافات و که برای ما مهمه فی طریقتنا در شیوهی که داریم لدراست اپور شعر العربی و انواعها انشاءالله در شیوهی که ما برای درس خودمون گذاشتیم و میخوایم شما یاد بگیرید و نسبت به شعر عربی و وزن اون آشنا بشید اون مقداری که شما لازم داشته باشید و مهم باشه برای شما اون رو خواهیم بعد سنعار و باال انوای توه ما را این طریقت نا ل دراس و تعخل شعر عربی و انواع ببینیم این قسمت اول کتاب همان شد تو مقدمه بود و ونا تعریف بود و چی و غیر و اینا ما هنوز وارد معروز از جلسه بعد نگاه بهره تویل فته بر کلید بربت شروع میکنیم بهره تویل خصوصیات شما برای شما میگیریم و شما بهره تویل رو یاد میدونیم شد بهره تویل تموم شد بعد بهر بعدی بهر بعدی بهر بعدی خوب مثل هم هم هستن زیاد موقعیت سنگینی نداره ولی از شما خواهش میکنم که انشالله تعالی تا به قول خودمون جلسه بعدمون که حالا شنبه هم تعطیل هستید و میتونید لا این ما قبل رو یه خلاصه نویسی کنید پیش خودتون یه فارسی نویسی کنید اصطلاحاتش رو هم بهطوری با چشوتون هم نگاه کنید 4 تا یاد بگیرید که موقعی که می‌خوایم بحر رو بخونیم برای شما مباحثی که گفته میشه با قول خودمون آشنا باشه و بتونید راحتتر حفظ کنید هر کدوم را هم همون سر جای کدش حفظ کنید تکرار کنید حفظ میشه چیزی نیست از هم با قول خودمون آدم داره غذا می‌خوره نگاه کنه هی نگاه کنه نگاه کنه, نگاه کنه. نگاه کنه. بمونه این درس درس شیرینی هم هست حتی کمک به شما میکنه در فهم شعر فارسی که زبان مادری خودتون هم هست و در واقع شما رو فاضل در این چیزی که دیگران بلد نیستن رو انشاءالله شما یاد میگیرید و میتونید از شعر لذت ببرید همه شما رو به خدای صبحان میسپرند و انشاءالله که زهد و سلامت کامل داشته باشید و موفق و منصور باشید در پناه خداوند و السلام علیکم و رحمت الله و برکات